بسم الله الرحمن الرحیم لله رب العالمین صلو الله و آده و طابرین و معصومین و اللہ تو دارمت و حضر شد در موازیسی که در منظار از منظر مونین من مقیم شدن از ظهور و تحویر ظاهر و تحویر و این هم واضحه ده. مرادشون از ظهور یا ظاهر دلیلی در یک منا به حساب و که این احتمال خلاف هم داده میشه بلکه احتمال ظریف که اون احتمال ضعیف عقل نمیشه تحویر این در اصطلاحشون معنی یا تبدیل این که در یک معنای ظاهر باشه لیکن به اون ظهور حق نکنی توجیهش رو کنی ظاهر در یک معنی در معنی دیگه ظاهر میز احتمال ضعیف میره ما روی شبانده خارجیون احتمال ضعیف رو ترجیح بدیم این همون است که در به فقر زیاد به کار رو دونیم اصلا اروایت و مهمور یا لابود من ها این اصطلاح تأویل در کتب اهل سنت هست در اصول آمده در تفسیر آمده و در فقر هم در روایات زیاده شده و از شد که منشهش هم کلمه تأویل چون یک اصل قرآنی داره و ما یعلم تأویل و راست خونه فلعلم ها کنون آمدنا قراطم این که شده قرآنی داره این در زنبه اسلام جا بساره این اصطلاح تحویی الان روزه ارز کردم که این کنمه تحویی در موارد مختلف کارایه های مختلف این معنی که الان ارز کردم این معنی که ما بیشتر توی شهر و توی حدیث به کار میبریم این معنی که ارز کردم در کتاب احکام آمدین یعنی جایی که دلیل رقایت و نه ظاهر در یک معنایی و که معنای دیگری هم داده میشه. ما به اون معنای دیگر فهم داشت بکنیم دو اصطلاح هم میگن تحویل البته در میان روایات اهل سنت هم تحویل هست و اصل این تحویل در حقیقت که از مناشه اصطلاح های بزرگ بین مسلمان ها شد آیات خود و بود. هم بود اصطلاح تحویل از اونجا شروع شد مثلا از الله خود ایدیه هم در قایات و قرآن و جائران با که خدا آمد و آمدن احتیاج به مکان داره اصطلاحا آمدن نجور تصور میشه که فردی در جایی نباشه و, بعد بیا و این با اون معانی در واقع زرف هست کلن مثلا داره اون وقت این شروع شد بحث تردیل و رنده خصوص که ای دم از روایات اهل سنت را این مسال اعوائلی دارد چه مثلا جهنم که میشه خداون یرد آقا قدم ها افیحا رو خدا تو جهنم میدارد این منشه ای ترسداشو بعدها اده گفت این قدم کنانی از اده نه همین داره شخص کنید بعد بعد رباری هاسته ضعیفه که بعد اضافه شد این موجبه به یک دعواهای سنینی در دل بله ها زعبائی شد و چرق متعددی هم سر همینجه به وجود آمدن این مثلا معروف است که اده ا چون در روایت از برش خدا روز جمعه از آسمان شب جمعه میاد زمین مثلا پشت با ما شد مثلا علف برای بر اینکه خدا از اون علف ها بخار. این دیگه ادامه داره این طور مثلا یکی اون ربایی چیزی اون بازره که اون دیگه نیمان رباییاتی بگیم من زیاده اگر آن میخونی یه نگاه در بر های توهی دو اووقین نه همین بخشش داره اما تو اون بخش ها روایات عقاعدی رو هم و براشت هم چ هم چین مسائل بسیارقدی حوزده که اینجا منزظرک نمیکنند. آمده در روایات انندستان نه عبات خیلییزشک همین روی مسائل تویین ها که هیچ مناسب نیست، الب تافاً زیاد حال مراجعه هم به این مسائلی کرده کردن. این بح زیاجکن مخصوصاً جوش آشقا به تا ظره گرا بودن پیدا شدن و در درچه هم تایث دیگری پیدا شدن به نام ظاهریون شبیه اخباری های ما. این یه هیچ بونه تغییری رو در نصی در روایتی در ظرهعاه واردره نبن. مثلا داره که اگر مثلا به اونث کرد نمازش تا چه روز قبول میشه میگهری پیبت کرد نماز چه روزی باید قضا کنن مشروب به غذا آاز شده بود. لم صحبت خلاس و این رو؟ به معنی اینکه باید غذا بخوره اینکه مثلا مراد اون شدت مثلا این دیگه الان هم اذه هستن این تجربیاتی که الان ما داریم یه مقدار کنه مثلا من دیدم در دروکسن استهای معاصرشون که مثلا میگه شوهرم درست نمیکنه میگه خب نظرش رو بکن به به من اگه نشو معذرتتون بکن شن این تقابل به نماز و اون اعدامش بکن در این حالت تضاد تعلیلی و عدم تعلیق در دنیای اسلام جای خواستی باید کن از که در منشه اشم افتداعا ظاهر آیات بود یاد الله حقیدی هم وید الله الارب به هم ناظره نظره به خدا و بعد روایات کن که موظفش هم ابو حرره معروف نارو کرده یه روز قدم که خدا قدمش در بهش میگذاره در جهنم و فتغول قطمی قطمی این روز معروف و ربات انکم ترون ربکم یوم الیومۃ لرؤیت کیکی از مسائل خلافی هستند در کتب کلامی مسئله روحیت است که هلون که رؤیت الله مفصلن هم شیعه هم سنی هم اشعره هم معتزله بحث‌های مفصلی کردن تمام اینها منشأ قسمت مسئله تعبیر بوده این اما این تعبیر که از علی داره فعلا محل کلامی ما نیست اما اونچه که الان محل کلام ماست و به درد کار ما میخوره روایاتیست که ما در خیقه داریم این است که در, در اصول میخوره اصلا این مدارش مردون به عبارد و قضایه تاریخی و حتی آمدن تأویی کردن مثلا دو تا قصه رو در عبارد کردن مراد این بوده با همیگه نساختن قرد به و در حقیقت تأویی خیلی از حالا زباهری که یک مقداری مثلا مهم معنی بوده گار اوها تأویی رو هم در روایات متعارضه به کار بردن تا رو با تحلیل برداشتن برداشتن تا آروز با تحلیل این همون مختب جمعی که ما داریم که مرمون شیف الله نفسه این کار رو در تحضیب و استفسار انجام داد بعد از شیف هم انجام داده شده و قیر شیخ هم داره که سنیدی که سعی می کنن حتا دو تا روی باید رو با هم هنگ رو کنن ولو کلاب ظاهر باشه یک جوی با هم که باشه. همین رواز محروفی که اهل سنت در موت اداره خب همینه مثلا در موت اداره که خیمنبر اگرم در جنگ به اصافت خیبر موت اداره کرد از اون رو از دارم از جابر ابن مکه ما که سال بود تمتع کردیم خب با هم متعارض. یک راه های رفتن برای توجیه و بود چار رو کنیم مین جمعه بود راه جنگ خیلی حرام شده این حرام مونده تا سال فتر مکه با در سال فتر مکه حلال شده این مونده تا اواخر زمان پیغمبر یا اواخرش هم نمیشون تعیین بکنن دومرسله حرام شده چرا؟ چون عمر گفت متاسم کنه سال در رسول الله پس این معلوم میشه که چون صحابه چیزی نگفتن پس قبول دارن که تحریم به پیغمبر برمیگرده در حقیقت این تحریم من قراراً از یک این نقطه فنی این تألیل در حقیقت در رفع یک مشکل علمی خودتونه اون تقیی با یک مشکل علمی رو شده دو تا روایت متعارض دیده این تألیل و جرم یک نوع رفع مشکل خودمونه نه فهم به نه فهم به خب اگر روایتی ما داشتیم سمندار حضرت سختون دابرس لعه لعه لعه لعه لعه لعه لعه لعه لعه لعه لعه لعه لعه لعه لعه ل سمنا و حضرت و انسان در حقیقت شیخ مشکل خودش حل کرد ظهور بر روایت درسته میکنه نمیتونیم ما با این اینجور جمع کردن و با این اینجور تحبیل کردن برد این گموه سنت رسول الله من از یک مشکلی که در اصول ما پیدا شده که در اصول احل سنت هم هست در استدلالات قول خودشون یا بقول بردار ما آسین برحنه ای که برحان هایی که اردن یه مشکلش که گاهی وقت مشکل رو به لحاظه ادراکی خودشون حل میکنند. این حل مشکل نمیکنه. یعنی این تاروز می به هر نقویی این تاروز برداره فکر بخونه باید تاروز برداره این کافی نیست اون که الان بیشتر مدرخه و حقیقتر مدرخه کشف سنت و هوایق خود دین و معارف دینیست به مجرد این هر کار و به مجرد این که مثلا این را هم اون بکنیم اون را هم در اون بکنیم تا آرز برداشته شده این جا حقیقت کار صحیحی به نظر نمیاد. حال... به هر حال نه چونال از از سواتون لا برسوگی نهست جوهای دیگه هم همینطور باید روشن بشه اینه مثلا باید روشن بشه و لذا الان حالا اون قسمت آیات و اعراض این بحث خاص داره الان این موارد الهاماتی که من خیلی تخصص توشان که در واقع توش خونه که یعاده نهند حجم حاصلش چی باشه یه مقدار هرکدونه همین است که ماها گفتیم که کلام محتمل توجیه داره اینها خب این سالها 1400 تا 1600 سال از ما نرفع شده تا اینا به هر وقت یک مقدارش این مساله اینه خود کلام دارای معانی متعدد میشه و توجیه برمیداره و چه کار رو ما معتقدم که در اون مسائل مثل وکه و لاه الله یدالله و, ید و, و که در قرآن هم آمده در دنیای اصلاح خب اینچونی شد یه عده گفتن آئین ای ظاهر آیه ای دست خب خدا که دست نداره نفس آمده به او لازمه مهمه جان غیره معهوده نمی کنیم خو خب ما به تعبود میکنیم خدا خداون دله ما می می دوله منا غیر مقبول است فقط که ننت وارد شده پس ما همین مقدار تشش یه راه بوده که دم یه خوب توجیه کردن که اونرا قدرت که کنا از خودست یه دن پس اون گفتن ن به همون ظاهر شخص میتون خدا قدم داره دست داره فزار اینفلس و همون ظهر است یه دن خوب تو مسالله ربانی و فلسکی از از راه اون راهحت خاص و خود شب سعی کردهن خب یه راه دیگه از میمونه لده که ما ریشه های این تحبیر رو پیدا بکنیم یعنی ما برکرده ایلی بکنیم بقول آن برهانه بینی نه برهانه اینی ما بیاییم بیاییم اصلا این چرا آمد نکته چی بود آیا ای داره آیا از تورات گرفته شده آیا در آیات مکیه است؟ آیا در آیات مدلیه است؟ محیط نزول آیات, نزول آیات رو و شواهد نزول آیات رو و شواهد تاریخی رو اینها رو بررسی بکنید که چرا مثلا خدای متعال یک کلامی رو میفرما که اون کلام مجمل باشه با این که شراراً در وراه اهله به لسان عربی مبین، اگه به لسان عربی مبین این چطور میشه این کلام مجمل؟ ما ببین اون پشت پرده ریشه‌های مطلب رو بررسی بکنیم. به هر حال چون این بحث بحثی توجیه تفسیر و اعوابه اینها حالا اگه یک وقتی بحثش رو و اما اون یک مرحله فکر می‌شیم حالا اون چه چیزی که ببین بقیه اما اون شیکه راضی به میشه خب یک راه همون بودی که اهل سنت راستن با ارمان تعویل تعویض خب علماهای ما هم راستن مثلا این نکته عده‌ای هم در علمای ما به جای تعویل اصطلاح دیگری رو به کار بردن که اهل سنت ندارن اون عنوان یورد علم علمها الا اهل ها میشه روایت واضحه نیست برایش موههمه نمیشه قبولش کرد مشکلاتی داره یا تعویل میکنن اهل سنتی یا ترمی کنن در روایات ما آمزه که ما راهی اوقات او شرائط خاص مطالب میدیم که شما هم خیال مکنیم باطل درست نیست به مجرد ظاهر و حکم بطلان نکنیم نکنیم فروض علم ها علینا این هم یه اصطلاعی که ما داریم اهل سنت ندارد اون که ما در کتب خیلی خودمون ساری و جاری شده بیشتر اینه و مثلا و, ما و, ما و, ما و این تا ما و ما و ما و ما. اما یا مترهان که اهل سنت هم دارن این تغییر مسوه اهل سنت هم دارن ما یه چیز زیاد داریم که اهل سنت نداریم. من از کل در موارد اصولی هی و اصولی خیلی دقت به فرم ما با. شون اون تعبیر رو دو علمه و الینا از هم بر نیامده اون چون نیامده اونها ندارن اما اون ما از علم ما سلام اده از ذراو هم ذری چرا ذهن شو به ما بکنی دقت می‌کنی این یک مطلب که با در نظر یک مطلب دیگه که اگر یاد آقایون باشه مرحوم شیخ رو مناسبتی که اینکه از جماع معرفه ما امتن اولامه نصر شیخ انصاری تو رساله اگه ذکر میگه بابا این جنب اینو طرحه وارد میکنه حالا آره شما چطور میگه از جماع معرفه ما امتن چون به تعبیر اگر ما دو روایت داشته باشیم که با هم آرزا چهار نقطه در اینجا وجود داره هر دو هر حدیث دو نکته اگه حجیت سند در هر حدیث هست که حجیت ظهور در هر هست شما میگید میگین که ما دو تا حجیت سندا قبول بکنیم دو تا قبول بکنیم دو تا حجیت ظهور رو در شمول بکنیم <تصفح> پس شما دو چیز رو رعایت کردین حجیت ذو در این خبر و حجیت ظهور در اون خبر اون چیزی که میگه بیا طرح بکنیم میگه خبر رو طرح بکنیم مثلا یک خبر رو بندازیم طرحش بکنیم اگر یه خبر رو ترک کردیم اینجا دو فصلی رو طرح می‌کنی که سند اون خبری که ظهور اون خبر اون یکی دیگه دو تاش میمونه هم سندش هم ظهورش شما چون می‌گی یعنی تماماً ممکن الله متع لاخره شما در این چهار تا دو تا مربوط به سنده و دو تا مربوط به ظهوره دو تا خبر دیگه. در این چهار تا اینا با هم تعارض پیدا کردن شما می تعویل تا میکنی جمع میکنی چه کار میکنی میگید سمدار قبول بکنی حدیث قبول بکنی بگیم مثلا سمنال ازارت سوطن این با مثال این انسان ای امسال خب یعنی در ظهور ها رو تحریک اگر خوب دقیقت بکنی این تعویل هم یک نوع تره فرقمان. نمیشه تره چپار ظهور رو بزرشی فقط کار ما در این حق خیال کردیم با این کار اون قداسه حدیث رو حذف کردیم خب فرض می به بذازه حدیث کردن چون که به سندش هست میشه به زور هم میشه چه فرقی میکنه از به نظر من اینطور میاد که این تعبیلات بریده که سند تعبیلات رو نال کردیم این گونه که تا اگر تعویل شواهد داشت خب اون یه بحث دیگه مثلا این حدیث رو که امام فرمود اجمال داره یه جای دیگه این مطلب آمده اجمال نداره کاملا واضحه اون که بحث نسه. اون که تعبیر حساب نشه همینجوری یعنی شیخ میکنه یعنی امام علی السلام تعبیرشون اینجوریه مثلا در روایت درس سلیام اسمعیل محمد بن به امام ساده عرض میکنه که امار ساباتی روا هم که روایه امار روی موسا زیده چیگه را رو چی کرده گفت فضل سرمی شما فرامده النافل از تو فرید است هم نافل واجبه فضل اگه با کجا کجا کجا نافل واجبه این در حقیقت امام بر امام توضیح میدن میگن من گفته بودن که اگر انسان شکر ذکرت نماز نافله رو کنه اگر نقصی در نماز بود این درک از جبران میکنه لذا اما راسواباتی از این درک این جور فهمید چون این حالا چند جور داره فهم خود این حدیثه الان نمیخوام وارد بشم چون چند جور میشه فهمید حالا کلام اما که درهایت امار راسواباتی چی فهمیده چند جور داره حالا یک جورشی اینجوریش این خیال کرده اگه میخواد جبران بکنم با طریقه باشه حالا احتمال دیام داره که چند شهر چون این خوب واضح نشد هر مثل محمد موسوی بن رضا من به اون ذرافت کلام اما پی نبرده و امام توضیحی دادن اون توضیح هم خیلی واضح نشد حالا اون بحثشه خودشه دقیق بفرمایید در اثر ما هم تعبیر حدیث لزوما رس... فرق نمی کنه مخاط تعبیر باشه میخواد مرن حالا مشرح باشه ما لازم نیست که همیشه رو تعبیر کار بکنیم مثلا ما یک روایت داریم از اسما از یک کتب واهل پیر نصعی که صحیح هم در وقت که سلاسته اشوار و نیست داره در نصحی که محمد این سنان کرده از همون شهر سلاسته اشوار داره خب آقایون آمده جمع بکنه این بکنن بکنه به نظر ما جمع نیمه که این واضعه با این که تو محمد این شواهد نشون میده اهل قرایت و سما نبوده به اجاده اکتفاق میکرده نصخاره از بازار میخوایده و قاله معلوم تحديث می‌کرده نسخه ایشون غلط داره کلمه ولیس خب این خیلی راحت این هیچ مشکلی نداشت توجیه و تحلیل و احتمال و یوختملو نسخه ایشون غلط داره چون همین نوع کتاب همین روایت اسوادیه جوادر از راه دیگه رسیده که صحیحه چیزا اصلا از سار و نیست اینم هم همون روایت سره یعنی اصحاب ما در تهاوز اینجا کاملا متحیر شده چیکار بکنه این من اعصرم که بیشتر این رسمت تهاوز نظر ما مرجعش به مسئله اختلاف نسخه. صرفی به دو تا نسخه از اسماعیل بن جابر. توی یکیش اصطلاح اشوار و نسخه توی 3D کلاف اشوار و ترمسخه. خیلی واضحه به نظر ما که برمیاد به اختلاف نسخه. و چون محمد بن هم تذیه شده هم گفته شده کذاب هم مثلا. و به نظر ما اونا نیست، کذابیش هم به همین معنا. ایشون به نحوه سماع ندیده روایت به نحوه وجاده از بازار، با. کتابو خریده از ازش توش بوده ازشون هر لذا خود دقت بفرمید مسئله تقویر و توجیر و جمع مهما امکن اینها این یه مقداری در پیش ما اولا حالا من نکم بحث مخلوط شد جدا کنم. که داشت بکنم اولا اینکه ما ترح رو در مقابل ترحیل قرار میدیم این به نظر من خیلی ایمینی چون اون ترحیل ده نه به ترحیل حق باشه که انصاف هم حالا ماخد ما ترح سند رو بکنیم یا ترح زهور رو رو سپره میکن بنابراین چنین سند شود یک نهری اولا باشه که مال امام نیست سلام امام نیست اما امام فرموده باشه و مراد جدی امام چیزی دیگری باشه خلاف لازم. که خیلی مشکل که, میکنه. که به سر حل نمیکنه لذا بنده به با تاکید و اتقالجی مسئله تعارض که منتهی بده به تعویل و به جذب البته مسئله تعویل در علایات ما منسعد منحصره به تعارض نیست اشتباه نشه تعویل در غیر تعارض هم ما داریم نه این که نداره اینجایی که مثلا معارض نداره این مسائل به یک مقداری باید ریش یابی بشه شواهدش پیدا بشه تعمل بشه فرصی ما الان در واقع نماز خوندن زن پهروی مرد یک چند سال رواز داریم که نخونه لاسو سلس مره ایلاجم در رجوع ولی یا مرد مثلا زن تحریش باشه نماز نخونه هر دار نماز اما یه رواز واحد از انمار ساباتی دار که دفت دراک که پنج متر باشه تقریبا با فاصله اشتار <نداره> خب این همه ما اصحاب داریم زهاره محمد موسیقی مسئله محل اقتلا مسئله نماز خوندن زن و مرد خب محل اقتلا و هیچ شد نقل فاصله پنج متر رو. الا امار ثابتی خب معارض هم نداره بحث سر معارض نیست احتیب. مثلا باید چیکارش کارش بکنیم بقیه روایات رو اون تمام اون روایاتی که امام فرنده نمیشه بگیم بر کمتر از پنج شه خب یه مسئله محل اطلاع و خلافت در مقدره رو هم به نظر ما همین عمار منتردن مورد با 50 سال اون اقتصاد در مقدره رو اصحاب دیگه منع نکردن چی به حدی قضیه می‌دادن دارم, دارم. بحثشون شدی ما در کل جاهایی که نماز شراحت یا ح داره الا با فاصله فقط دو تا روایت داریم هر دو از امار کسی هم نرمه کرده که با فاصله پنجنه اون کراهت یا گرمت داشته میشه. کسی هم کاره از امار رو یعنی ما معتقدیم به مجرد این که روایت رو دیدیم در سکر ترویر نیستید ریشیابی بکنیم. این روابط ما شخصیت های خاص خودشون داشتن. که نقل به معنا هم جایز بود ممکن است اینها نقل به معنا کرده باشند. این عامل این ترویل و آمل این تعارض و آمل این مشکلات شد خب الان فصلهای علمای ما در این است که اگر میت حسوداره شد اجماعیی سیدیوی شد او که به حصل نمی نمیشه یک گرمارت وارد بریم از اممارم با سمیه جناب اممار صاباتی فتحی این ایشون روایت دارن که ایشون گفته که بل من مسلمیر یخصت ولو کان منیه فرق اصل تعبیر تصير بده خب ایشون تعبیر داره به این معنا واهی که فتوای احساب بنرس که در صورت تحصیل منیه و شروع کردن حساب توجیه کردن تعبیر کردن خب به جای اینطور بل مثلا چون اما فوسیف شده بر روایات جزء موعصبات خب بعضی اونها ترخیص میکنین بعضی علم اله و احلام من معتقدم به درستاب و که اینها همه ریشایت کاریخی داره راحتی میشه اونها مراجعه کرد ریشایش پیدا کرد و زرافت ها و نقطه هاش رو پیدسته در آنجای برس اینجا نیست حالان یک مقدار رو که الان علمای ما انجام دادن انصاف قضیه این تعبیلات نیازی اونها نبوده اینطور نیست که اونها اختیاری باشه و جمله از در حقیقت یک نوع نظام ما هم با رعی مسئلیون و سبحان مسئلی عبدالرحمن موافق ترین که اگر روایتی با شواهد کتاب و سنت و عرب و زن جهات مختلف سازگاه نداشت به جای تعدیل به اصطلاح ماها به اصطلاح سنت ترکش بکنه یا به اصطلاح ماها رد علمها الی احله ها بشه همین را دید که مثلا آره خویه همه هستن خیلی نادر میشه ایشون بالاخره حدیث رو بخواد جمع میکنن و الا غالبا اون وقتی که این ضعیف کره کذا سریع ترش میآره و عمل مشروع هم بشه راه رو این راه ایشون با غالبا با مبنای ترجیح مسائل رو حل میکنن البته نه همه ما هم جهات مثل شهرت اینا شهرت هم قبولم الان که ما که این مسئله تعویض هم در کل معارف دینی ما یک جایگاه خاصی باز کرده به این مقداری که این کتاب نورشتی ها باید کردم حل نمیشه و که ما در بحثه اصولی خودمون مهمترین قسمت ما بحث روایاتی که در احکام وارد شده و در فقه وارد شده و این زیادهه بارد ان محصول حدیثه ما محروفون و, و او معولون به نظر ما محروفون و معول یکیهه تعویلم نوتره اینطور که ما خیال بکنیم حالا که تعویل کردیم پس حدیث قبول شد نه اصلا من که بالاتر اون نقصی ای که من عرض کردم ما با تعویض در حقیقت یک مشکله علمی خودمون رو حل میکنه نه وصول به واقع یعنی ارزش تعویض به اصطلاح دیگه در این حد است که خبر رو از منزله اماره بودن به اصل عملی تنزل میده دیگه مثلا به اصطلاح اصولی بشیم کو رو این عبارات دقت بکنید ما خصوصا رجوع ما به اخبار به عنوان اماره یعنی به عنوان اینکه راه بر ما تاریخ واقعمون به واقع اما در اصول عملی ما واقع رو نمیدونیم اصلا فرض اصول عملی اینه فقط بگیرید اصلا فرض اساسی اصول عملی ما واقع رو نمیدونیم یک علمی میداریم یک ادراکی داریم مرا علم باشه یا زنده معتبر باشه باشه ما یک ادراک نفسانی داریم در اصل عملی میاد راه رو رو اون ادراک نفسانی تون بار می کنه. اون فارغ اساسی بین اصول عملیه و بین امارات یه نظر بنده اینه. در باب امارات پلیس به واقع شما تنگ رو به واقع برسیم. نست این که زیدنا میگه در حرم بازه مثلا یا هرنگ اون رو سه بسته از در این اینه به واقع. پس امارات شعنش اینه اما اصول عملی به برسه. مثلا پیشر در اصول عملی که شما واقع رو نمیدونید. گووش الان دست این قصاب دیدید نمیین ترکییه کردی یا نکرده زر شرقی کرد پس اصولاً در اصول عملی پیش فرز عملی عدم و به واقع پیش فرده شده. حالا که شما واقعه رو نداری طببر اون مقدار ادراکتون میاد نیاز ترتیب به اثر میده. یعنی به اصطلاح معروف رفتار شما رو تنظیم میکنه با مقدار ادراک صورت ذهنی شما با اون ادراک ذهنی شما طبق اون صورت ذهنی میاد برای شما ادراک هست مثلا دیگه شما الان میبینی که این قصداب مسلمانه بازار مسلمانه هست این گوشت میخرد این ادراک شما هست ادراک شما تعامل این فرد با این گوش معامله تسکیه مذکران میاد رو این ادراک شما بنام میکنه میگه حالا که اینطوره پسا پس هم بخور مذکر ها در سیاره اغلایی در اینجور موارد چون یک مقدار ابحام داره قدر متعقنش یعنی که باید یک نوع توش باشه و این فرق بین شرعی اصل شرعی با اصل اغلایی میشه مثلا الان اختلافی که الان شده سابقا نبود مثلا مرمومه های خوی قاعده تجاوز رو اغلایی میدونن یعنی انسان وقتی من مدینه کار تو خونه بودن یک کاری انجام نه حالا شش بکنم متوارف اوغلا میان من وقتی که انجام دارم جمع بوده درست بوده درست انجام بده لكن این ادراک اوغلایی چون که شعث بده من هم ناداره در جایی اگر ها در این جای بیاد یا تسامحا غالبا در جایی که در این عمل ملتفت باشه اما اگر ها میگه من تو خونه فلان کار انجام حواسم پرت بود هیچوقت تازه در خوابیدار شدم نمیفهمم انجام چیکار دیگه اونجا اساس صحت جاری نمیکنه و با تجاوز جاری نمیکنه. اول خویا معنی همینه از روایات اساس صحت فی فعل نفس این نگاه بهش تعبیر اساس صحت می کنن و میام تعبیر قاعده تجاوزی یکی اساس صحت اینجا مراد من فی فعل نفسه چون اساس صحت فی چه غیر داریم عمل فعل مسند صحیح یه اساس صحت فی فعل نفس این که قاعده فراغت تجاوزه اون اساس صحت فی فعل آی خودی قید میکنن که در صورتی که ملتفت باشه قاعده تجاوز فراجو اگه ملتفت نباشه این قاعده جاری نمیشه چون این قاعده رو اوغلای گرفت اون وقت نقطی فرق ایشان با دیگران همینجاست اون آمیگه میگن بعد اوغلایش هم اینطوره اما تعبد شرعی اوسع دائرته از فهم اوغلای از سری اوغلای تعبد شرعی مطلقاً آمده مخاط ملتفت باشه یا نباشه پس این نکته همیشه این در ذهنتون باشه جاهایی که سیره اوغلایی هست غیر از اینکه از طرف شارع امزا میخواد ولو و به رحمه و به سکووت مثلا عدم رد غیر از اینکه امزا میخواد باید ببینیم که دلیل تعبد شرعی اوسع دائرته یا به مقدار همون تعبد اوغلایی سیره است فهم اوغلایی که ایشون عرض میده خاصا باوری این خلاصه بحث ما تعویل رو در روایات در فرق داریم تعویل رو در مقابل طرح اول در تحویل یک نو مسئله مسئله الجوامع ما امکن اولاً من که مفهوم ادعی مطرح کرده و بعداً اصلا شواهد روایتی چنین روایتی نداری و این یک که بوده که امسال شیخ طوسی داشتن قبل از شیخ طوسی هم تونه بحث من در تعارض نیست شواهد نشون میده که ادعی از علمای ما هم همین مسلکی داشتن مسلکه الجبر حالا ما حتی علمای اسماعیلی به احتمال قلی همین مسئله رو که الجمع ما هم کن اولا منتر و اینها این صافن ثابت نیست و مجموعی کلماتی که در اصول ما و در سقه ما در سقه اندماد حدیثی ما راجع به تعویلات گفته شده عده زیادیش اگر ایشیاب می بکنیم نقطهی بر اون تعویل وجود نداره و اصولاً به طور کلی تعویل دلیل رو تبدیل میکنه به اصل عملی تعویل همیشه رفع مشکل علمی ماست نه اینکه واقع رو بر ما کش بکنه نمیتونه راهی به واقع باشه. فقط میگه چون واقعاً این ظاهراته ما اینه بگیم ظاهر عمل نمیکنه پس نتیجه ای می میشه این خیلی ما محل قبول ما نیست یعنی این که ما یه مثلا hẳn لله علی خلاف ظاهره اون رو عکس بکنیم باید به دنبال شواهد بگردیم و سر اون نقطه خلاف ظاهر رو پیدا با کنید و هست در فله ما تو پا ها متاسفانه هر این محله که تعویل می کنند بل... به نظر ما تعویل و تر هیچ با هم دیگه ندارند یه بود به حالی و سال الله علیه و محمد <تصفيق> <تصفيق>